في هذه سايه في كل ساعه وليا و حافظ و ودليلا و حتى تسكنه ارزك تو و فيها في طويلا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من نصاره و ابوانه عزوج الله من الشيطان رجيم و از سال عبادی فَإِنِّي غَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ ضَائِعَةٍ زَادَ آنَ هل يستجيبولي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آیه 186 از سوره مبارکه بقره که هفته گذشته یک در واقع تفسیر فشرده و مجمل و کلی از این آیه شریف ارائه شد اما عرض کردم چون بسیاری از معارف اعتقادی، اخلاقی، عملی ما در این آیه شریفه نهفته شده من اجازه میخوام که یک همین وقت رو به این آیه بیشتر اختصاص بدیم مباحث دیگری رو هم که از این آیه میتونیم انشاءالله بهرمند بشیم اونها رو هم به یه مقداری بپردازیم. اون کلیاتی که در رابطه با سوال عبادی انی انی قریب عجيب و, و دعوتدا استجابت ایمان رشد کلیاتی جلسه قبل با به تفسیر المیزان عرض کردم اون کلی رو فعلا داشته باشین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 عباد من سوال از من می کنن. این سوال از من یکی از دوستان هم جلسی قبل اشارهی فرمودن آیا انی از من وجود من صفات من انایات من چگونگی ضمنی که می تونه آیه معنای عام داشته باشه ولی با توجه به این قید پاسخ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 که در آداب دعا هم این رو ارز خواهم کرد که بعد روایاتی در این باب وارد شده در چه شرایطی دعا مخفیانه و تنهایی و آروم باشه در چه شرایطی دعا بلند و در جمع و با جمعیت و با حتی با صدایی که بقیه بشنوند و چرا؟ این همه ترف شده حالا عرض در اینجا پیغمبر وقتی مورد سوال قرار گرفت سؤال این بود اضاف، سعلک، عبادی، امنی میگن راجب این قضیه بود که خدا نزدیک دور ما میخوایم خدا را بخانیم با دعا بخانیم یا با ندا بخانیم لذا دعا و ندا رو فرقی که قائلن میگن ندا خوندن با صدای بلنده اما دعا عامه اعمه از میتونه بیشتر حتی اون خوندن با حتی تهدل و آروم زیر زبان با خدا حرف زدن هم باشه. که بعضی مواقع لازم است ذکر و یواشکی بگن. حتی دیگران نشنبن که ذکر قلبی بشه. <تصفح> گاهی لازم نه. ذکر به زبان بیاد. چون در این رابطه بوده فرمودن فعنی غریب. بگید من نزدیکم. این در رابطه با دعاست. حالا ما در این بعده در رابطه با دعا ید اون سنوکت ای که جلسه قبل درعرض کردم که باید بهش بحث کنیم. دعا تحول و توصول باسا درش کردم یعنی اتصال روح به با عالم بالای روحانی است. حالا تو بحثش میاد دعا اتصال به قدرت برتر و پیدایی روح قویتر و سعه صره. سه دعا توجه بیشتر به خدا و بندگی برتر جهت سیر بهتر و برتر و سریعتره. با توجه به اون سه نکتهی که فقط اشاره کردم پایان جلسه قبل و بحث نکردم چهار تا رو این جلسه طرح میکنم این چهار سوال میتونه با اون سه مسئله رفت پیدا کنه که حالا باز کنیم بحثو یک دعا چی اصلا؟ دو چرا دعا؟ سه دعا چگونه باشه؟ چهار چرا اجابت نمیشه بایی. دعا اصلا چی هست از نظر ظاهری میگیم دعا خوندن پروردگاره لذا در این آیه شریف هم ازا سألکه عبادی انی وقتی عباد من از تو راجب من سؤال میکنم که این سؤال راجب چی بوده با توجه به خدا نزدیکه یواشکی صداش بزنم الان فرض بفرمایید بنده یه وقت میخوام آقا رو صدا کنم خب، به اندازه فاصلهی که بین همدیگه داریم شاید صدایی خیلی بلند لازم نباشه من به که بشنون صداشون میکنم <تصفح> یه وقت شخصی ته کوچه است من سر کوچه میخوام که الان رد نشه کاری با او دارم مجبورم به اختضای این فاصله تون صدامو بالاتر ببرم بلند صدا کنم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 مثل اینکه شما یک گدایی رو می کنید آقا بیا خوندن، چرا؟ میخوام چیزی بد بدم مثلا این خوندن دعا در مورد پروردگار اینه بالله اگر کسی خدا را می خوندن خدا بعد از علم به خداست بعد از معرفت است. معرفت ما به خدا علم ما به خدا این است، نیاز محض کمال مطلقه مطلق کماله همه ما محتاج او هستیم نیازمند او ایم یا ایه الناس انتم الفقراء الله والله هو الغنی الحمید او بی‌نیاز پس من اگر او رو میخونم مثل اینجور جور خوندن نیست که آقا بیا کمکت کنم مثلا یا فرض بفرمایید خوندنی باشه افراد رو برای همعرضی من در مسئله مثل صدا زدن یک نیازمند آقا بیا من کمکتو، کمکت کنم نیازتو برطرف کنم خودمو بالاتر دیدم او رو پایین ولی نسبت به این امرا الان من امکانات مالی دارم او نداره دارم میخوانمش بیا کمک مالی بهت بدم از بالاتر نسبت به پایینتر. گاهی نه هم عرضه من احساس میکنم خسته شدم نیاز به مجالستی مصاحبتی گفت و شنودی دارم شما رو حتی در سطح خودم هم, هم میبینم. میگم بیاید بشینید با همدی که حرف بزنیم بیاید این موضوع رو مباحثه کنیم. بیایم این مشکل علمی رو با هم دیگه بگو مگو بکنیم. اینجا خودم از شما بالاتر نمیبینم ولی شما رو هم بالاتر از خودم نمیبینم این در ردیف همین بشینیم با هم یه بگو مگو بکنیم ببینیم این مسئله به کجا میرسه این خوندن هم راجب پروردگار عالم تا معنا نداره. خوندن سوم.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 من اعتراف دارم من مندم شما رفتی پس دست منم بگیرید منم کمک کنید این به معنی عالم مادون اله از پایین تر نسبت به بالاتری که اون بالاتر میتواند با این خوندن من به من توجه کنه منو بکشونه گر گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه چیست به خصوص این انایت بفرمایید به خصوص در وادی معنوی و ارزشهای والای مافوق ماده فائلی داریم که میتونه فائلیت داشته باشه قابلی داریم که باید قابلیت تدیرش داشته باشه اگر قابل قابلیت نداشته باشه فاعلیت فاعل برای این قابل نیرو هدر دادن است نفل شدن هدر رفتن خدای جهان که فیاض علی اطلاق است خدای جهانی که منبع لطف و رحمت است او به ما یاد میده الان نمونهاشو ارزم کنم در احکام شرعیهش اگر قابل ندیدید فعالیت رو برای اون قابل بیش از حد قابلیت اعمال نکنید خدا دستور داده یک کلم ناف علا غدره اگر شما در یه سطح بالاتری میتونی حرف بزنی ولی به افرادی برخورد کردید که شش ندارن نکن آخواجون و توانش توانش باش حرف بزن باز دستور سریح امام کازم علیه السلام به شاگرد لایق و ارزندش جناب هشام ابن در اصول کافی باب عقل و جهل هشام با اغلا بشین با آدمای فهمیده زیرک نشست و برخواست کن عرض میکنه یابن رسول الله اگر افرادی یافتم آدمای خوبیم ولی این کشش های عقلی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 همین امام کازم به این هشام می فرماد. اگر دیدی اون ذرافت های عقلی رو نداره به موعظه اکتفا کن تو باب امر معروف و نحی از منکر چقدر امر معروف سفارش شده تا این حد که پیغمبر فرمودند کیف بکن ازا فسدت نسائکم و فسق شبابکم قیل یا رسول الله ای کون و پیغمبر فرمود چه میشه شما رو یه روزگاری بر شما بیاد که زنها فاسد جوانها فاسق بشن یعنی جامعه فاتحش خوندست دیگه فحشاب و بیفتی و فسق و فجور چه میکنه قیلا یا رسول الله ای کنو زالک ای رسول خدا همچی چیزی ممکنه بشه قالن نعم و شر رومن زالک فرمود از این بدتر میشه براتون اون چیه ازا رأیتم لا یعمرون بالمعروف ولا ینهاون ان المن کرد وقتی ببینید امر معروف نمیکنن نهی از منکر نمینمایند یعنی امر معروف و نهی از منکر اینقدر مهمه که ترک امر معروف و نهی از منکر از فسق جوان و فساد زن خطرش بیشتره با همه ی حرفا گفتن اگر در امر معروف امید اثر نیست نباید خودتو هدر بدی چرا امید اثر نیست این قابلیت نیست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 شما الان اون ارزش‌های های بالاتره بهش نمیتونی بدی اگر دادی زرره او باید شرایط گرفتگی رو در خودش ایجاز کنه تا بتونه بگیره حالا اگر این شرایط رو داره در خودش آمادگی و قابلیت برای بهر مندی از اون صد از شما داره شما بخوای امساک فیس کنی قویهه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 هر کسی که تصور کند من کسیم خود این دلیل بر بدبختی و بیچارگی نادانیشه پیغمبر با اون عظمت فریاد بر میگارد فقر و فخری من افتخار میکنم که خودم رو بیچیز میدونم و نیازمند و فقیر میدونم همه فقیریم نیازمنده بود حالا که فقیرین قدیت قلدوری و منیت نمی داره بگم آی کسی که شما امکاناتشو داری من ندارم دستمو بگیر حالا تو وادی علم مثال بزنم بنده میام کتابو بخونم نمیفهمم فهمم رو نگاه میکنم گیجم حدیثو میبینم دچار مشکلم شما زحمت کشیدی بلدی توازو احساس نیاز لازمه تکامل اینه که بگم آقا شما زحمت کشیدی تو این کار دست همو بگیرید این آیه چی میخواد بگه منظور این حدیث چیه امام علیه السلام اینجا چی میخواد بپرد اخیه من شما قبول ندارم لذا زمینه درخواست از شما هم خب در منده ایداد نمیشه دعا اولین مرحلش تزلل در پیشگاه خداست دعا چیست تزلل در پیشگاه خدا کوچکی هقارت جدایی خود رو پیش خدا امضا کردنه خدایا من چیم؟ اگه تو علم چیزی دارم تو خواستی یه لحظه بخوای انایت رو برداری همه چی یادم میره تو قدرت یه ذره لخت خون میاد یه تیکه رگو میگیره نصف بدنم فلج میشه یا مرگ مغزی میگیرم میافتم. بدن داره کارشو میکنه نه زبون میتونه حرف بزنه نه گوش میتونه بشنوه نه دست میتونه تکون چه خبره به چی بنازم به ثروت مینازی به جانت مناز که به چری بسته است هست. به مالت مناز که به شوی بسته است هر یک از این دارایی ها دعا معناش اینه یکیش در پیشگاه خدا بگم خدا من میفهمم هیچ رو مالکش نیستن هیچ رو همه دست تو. اگه دعا رو بفهمیم معنای کردم خواستن بالاتر از پایینتر که دعا ونی دعای الهی نیست خواستن هم عرض که نیست خواستن تر از بالاتره ولی پایینتر از بالاتر در این عالم ممکنه بنده در یه چیزی از شما تر باشن در یه چیزی از شما بالاتر باشن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 این هقارت رو در مقابل خدا پذیرفتم به همین جهت گفتن در دعا دستاتون رو بالا بگیرید آلیکرین جای نماز یکی قنوت یکی سجده و خواستن هر دو تا رو باش بازی کنن در فقه مقابل فقه امام صادق علیه السلام که عصف کردم سجده هم که بازی توش در آوردن اگه بشه میگم انشاءالله آلیکرین قسمت نماز یکیش قنوت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 فکر خب دیگه ما عمرمون الحمدلله تو کلاس بری شده و خودمون دیدیم قسمت عمده ما تو کلاس بوده حالا یا با اساتیدی که به ما درس گفتن یا احیانا ما رو وادار کردن بریم کلاس درس بگیم آدم بعضی وقتا میبینه شاید سوالم که داره میکنه و همچی با یک جستی با یک تبختری انگار میخواد به استاد بگه که ای زمین برقامت قامت والا نگرد زیر پای کیستی بالا نگرد ببین من اومدم تو کلاس خبر آقا چه خبره نشان یه وقت هست همچین با ی توختر این سؤال چی میشه جوابش مثلا خیلی خوب آقا جون تو هم بادت خالی میشه تو هم این دم... از دماغ فیل افتادن تموم میشه ولی تا دیر نشده سعیکن افتاده بشی افتادگی آموز اگر طالب فیزی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است شما رفتم خدمت بزرگی یه چند لحظهای گفتم درد دل کنم دلم گرفته برام حرف بزن فرمود خدا گای... یه مشکلی برای خودش پیش اومده بود برام کرد. گفتی هم چه مشکلی پیدا کردم من متأثر شدم یکی از بزرگانه که متأثر شدم بعد گفت که نه چون راحت شدی من اینو لطف خدا میدونم گفتم چرا گفت من فکر نمی کردم منی که کارم اینه توی این موضوع مشکل پیدا کنم خدا خواست به من نشون بده خودت توی این موضوع مشکل پیدا کنی. لذا این درس خداست برای من. به هیچ چیزیمون نمیتونیم بنازیم. همه چی دست اوست. لذا یه وقت از شاگرد داره با یه توختری آقا این سوال جوابش چه میشه؟ یه وقت میگه ما در مقابل خدا به من خدا گفته نشانه حالا مادیشو مثال بزنم. یه وقت بنده نیاز مادی دارم، تازه با یه قلدوری ام آقا شما میشه یه داری کمک مالی به ما بکنید. یه وقت خیلی افتاده البته اینجا میگه توازو گردن فرازان نکوس گدا اگر توازو کنه خوی اوست حالا اگر نشانه گدایی چیه آ تو رو خدا کمکم کن میگه در مقابل خدا دستات بگی خدا محتاجم فقیرم تو بخوای نظر انایت به من نکنی من ایچم این مثال رو گفتم ولی به بگم شما الان برق و در نظر بگیرید حسینیه ی آجیان نه تهران نه دنیا بینید افق دیدتونو از حسینیه آجیان ببرید تهران ببرید دنیا چراغا روشنه، اوشنه فنکویلا کار میکنه یخچالا کار میکنه کامپیوترها کار میکنه دستگاه گوناگون گناگون برقی تو ها تو رادار ها تو چی تو چی کار دنیا رو در نظر بیارید یک آن در همه دنیا بر قطعش چراغا همه کامپیوترها ها حالا شارجم نداشته باش، همه ایچ تمام تشکیلات برقی و و چیه قبول داریم در دعا با کی داریم از کیو می خدایی که اگر نازی کند از هم فرو ریزد غالبا یک لحظه نظر انعایتشو پروردگار از هستی به ما و به هستی به خود هیچ هیچی نیست اون وقت انسان اینو به فهمه در مقابل خدا تزلل داره لذا تو قنوت دست نگیره بالا گداییشونشون میده تو سجده بالاترین جای بدنش از ظاهر پیشانی دیگه رو پشترین چیز خاک میذاره به خاک افتادم در مقابل تو من ارزندام کنم اون وقت پس دعا چیست؟ تزلله دعا در مقابل خدا خود رو کوچک نشون دادنه لذا در زبان روایت اومده دعا عبادت چرا؟ عبادت یعنی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 ذل و دعا و حفص علی فضیلت دعا و تحریک و تشویق بر دعا کردن این آیه شریفه سوره مؤمن آیه شست این آیه رو امام باقر علیه السلام خوندن و بعد اینجوری تفسیر کردن عن زراره انبی جعفر علیهما السلام قال زراره از آقا امام باقر علیه السلام برای ما اینجوری نقل میکنه ان الله عزوجل یقول خدای بزرگوار این گونه فرمود سوره مؤمنه است ان الذين یستكبرون عن عبادتی ان الذين استکبار باب استفعال از ماده کبر به درستی که کسانی که تکبر می‌ورزند خودشونو بزرگ می‌بینن عن عبادتی نسبت به عبادت ما از این که بخوان عبد ما باشن بنده ما باشن خودشون رو عبد ما ببینن ما که در شهر ما نیست ما بالاتر از یه عرفایی یستکبرون ان عبادتی سید خلونه جهنم داخرین اینها رو در اوج ذلت و در اوج خاری میبریم جهنم سید خلونه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 حالا این می‌خواد باغ رو برای من تحلیل کنه، تفسیر کنه. کی گفت تشی در کنج و اتاقی تاری تنید. بچه‌ی انکبود توی این کنج به دنیا اومد. همینجا هم چند روزی زندگی کرد، مرد و از بین رفت. بعد فرض کنید با این انکبود ما بتونیم حرف بزنیم. خب دنیا رو برای من تعریف کن. چی میگه؟ دنیا یک حسینی است. چن کنج داره. در یک کنج هم من به دنیا اومدم. در درون یا مدتی زندگی کردم مردم تموم شد همینه. خو این حسینیه رو دیدی بیشتر ندیدی این حسینیه عضو از مجموعه بزرگتر ای ساختمون. این ساختمان این ساختمان عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر این شهر این شهر عضو کوچیکی است از مجموعی بزرگتر این کشور این کشور عضو کوچیکی از مجموعه بزرگتر این قاره این قاره عضو کوچیکی است از مجموعه بزرگتر زمین زمین عضو کچه از مجموعه بزرگتر منظومه شمسی منظومه شمسی عضو کچه از مجموعه بزرگتر کهکشون ها یک موجود از موجودات عالم وجوده چه خبره؟ اگر کسی افقه اونایی که دیدشون کوتاهه بزرگی برای خودشون قائلن ولی وقتی افوق دید گفت مرچه افتاده بود توی در آب داد میزد دنیا را آب برد سان دنیا را نورد گوه من آب میبره خود تو خیال کرد دنیا خودی یا ماهی میگه به دریا ماهی دم از خدا زد به کوی حق در چونو و چرا زد که چون دریا برایم آفریدی خط خشکی چرا گردش کشیدی مرا هرگز به خشکی نیست حاجت برون از حاجت چرا گشته از خلقت نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده محیا توئی چون ماهی و دنیاست دریا برای تو نشد دنیا محیاطی فردی خیال کردی فقط لذا کسی که در افق دیدش نسبت به این عالم نگرش پیدا میکنه در خطه تری همه هستی به ما هوه هستی هستی مطلق وجود به ما هوه وجود در کل عالم منهای خدا چیه یکیش منم حالا من در این عالم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 تکبر عملی در مقابل خدا رام تکبر نظری چیه؟ تو فکرام بگه من کسیم تو مرحله ذهن میخواد بگه فکر کن تو کی؟ تو ممکن الوجودی. روی ذم ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. در دو عالم ممکن الوجودی ممکن بی تو هیچ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 خدا میگه به نامهرم نگاه نکن نه خیر خدا میخوام نگاه کنم دلم میگه نگاه کن خدا میگه غیبت نکن دروغ نگو منیت نداشته باش مردم آزاری نکن تو میگه دلم میخواد این کارا رو بکنم تکبر در مقابل خداست دیگه چه تکبر به صورت نظری چه تکبر به صورت عملی دعا عبودیتیش که از دوتا رو داره حالا تفسیر امام رو از آیه بگم برگردم به این هست این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 حقیقت آلمی که شما بعد از مرگ الال عبد در این آلم باید وجود داشته باشید و اون مراحل رو کنید، این چیزی نیست اصلا اون وقت این به زودی میگه داخلین تو جهنم میدادیم به شکلی که در اونج پسی و ذلت قاله کی قاله؟ امام باغر علیه السلام امام باغری که این آیه شریفه رو میخوندن فرمودن خوبت دعا این دعا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 ادعای امیر المؤمنین و با معرفت آدم به زبان بیاره مولای مولا انتل غنی و انال فغیر و حل یرحمل فغیر الا الغنی مولای مولای انتل غوی و انال ضعیف و مولای مولای انت الدلیل و انال متحیر و حلیر حمل متحیره الا دلیل. مولای مولای انتا الخالق و انال مخلوق و حلیر حمل مخلوقه الا الخالق این دعاست نماد عبادته هر دو رو امام علیه السلام در قالب دعا آوردن در این آیه اِنَّ الَّذِينَ يَشْفَكْفَرُونَ اَنْ عبادتی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 و افزلول عباده ادعا اصول کافی جلد دوم صفحه 466 کتاب و اولین باب حدیث شماره یک قال ادعا اد یستکبرون عن عبادتی عباده دارن یعنی دعا نمی کنن و افزلول عباده ادعا قلتو اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنَ حَلِيم از امام پرسیدم این حضرت ابراهیم علیه السلام سوره توبه آیه 115 حضرت ابراهیم رو خدا میگه اواه بود و حلیم بود این اواه در کتاب امروز مجددن باز نگاه کردم دیدم بسائر و درجات حدیث از امام صادق علیه السلام یه بار من فکر کنم شبای قدر بود اشاره کردم سرمود آه اسمی از اسماع الهیست ابراهیم الله بود خیلی آه می‌کشید آه اینو دفعه کنید این حدیث اینجا لایا قلت ان ابراهیم الا الله حلیم ابراهیم خیلی آه از اعماق جانش کشید در این حال حلیم بودا نمیبرید صبور بود اینجج قالا تو همین حدیث امام فرمود الا الله و دا این داش چون یک وقت هست طرف از اعماق جانش توجه به خدا میکنه با زبان قالش میگه آی خدا غیر هیچ. یه وقت زبان حالش میگه آه خدا آهی که مثل ابراهیم از نهادش برمیخیزه زبان قال ابراهیم نیست زبان حال ابراهیمه لذا وقتی که حالا حدیثش هم اگر خدا خواست براتون میکنم طولانی امشب بخوام بخونم میذارم جلسه بعد انشاءالله که با بحث مناسبت اون قسمت بشه قضیه ابراهیم میخونم ولی این مقدار رو میگم جبرائیل اومد خدمت ابراهیم الان تو منجنیق حتی حدیث داره تو هوا عین حدیثینه تو هوا یعنی ابراهیم از منجنیق داشت پرتاب میشد به طرف آتش تو هوا جبرائیل جلوشو گرفت کاری میتونم بکنم گفت علمو به حالی یکفی مقال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 به خصوص که گاهی خدا دوست داره یه جاهایی شما دیدید در های تعلیم و تربیت اینا وارد شده معلمین این کار رو بکنن اینکه ایوی نداره این در مقام که برو یا کوبیدن نیست در مقام تعلیم و تعلم شاگرده معلمی میبینه یه شاگردی مقروره عزیز من توازه داشته باش باید متوجه سلام داری باید متوجه بشی برای اینکه به طرف بفهمونه کتابو رو میکنه یه سفر رو میده. میگه اینجا رو بخون. طرف تا میاد بخونه گیر میافته. خودش متوجه میشه. من عجب دعای داشتم. خدای کریم از همه مهربانتره گاهی میخواد گوش منو بکشه تو یک اموری چنان گیرمون میندازه میبینه به مولا تو این دعا انت دلیل و انل متحیر خدای متحیرم نه علمم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 خب حالا کوچیکی نشون دادن چه فایده ای داره هنوز ادامه داره آبا باید بگم دعا چیست؟ است یکیش گفتم دعا عبادت دعا وسیله قربه. حالا بحث میکنیم. دعا دفع موانع مسیر تکامل میکنه. دعا کمک با خودش میاره عامل موثر میاره حالا دقت کنید اینا مثلا شما الان در مسیر تکامل یک دعا تزلله تزلل زلت کوچیکی در مقابل کی در مقابل حب. هر کسی در این عالم دقت کنید همین ظاهر دعا یه چیز ساده گرفتیم ببینید چه کلاسیه در فرهنگ قرآنی که اگر به ما گفتن عفظلل عباده دعا عبادت برای چیه؟ برای قربه حبه دیگه برای تکامل منه عفظلل عباده ادعا حالا همین دعا رو ببینید در مسیر تکامل چه میکنه؟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 راجب ابلیس، عبا وستکبر کبر ابلیس چی بود؟ سجده کن، خیر انا در مقابل امر پروردگار این عبا که استکبار میشه تزلل نداره تزلل که نداره رونده میشه لذا برادر و خواهرم یک درس دعا اینه لقلقه زبان نباشه دعا را توجه داشته باشیم یه ساعتی از شبان روزمون رو اختصاص بدیم به دعای معرفت یه گوشه خلوتی بین خود و خدا خلوت کنیم لذا لقلق زبان و عبارات تنهام نمیخواد خدا امواط همگی رو رحمت کنه بچه بودم مرهوم پدرم برام داستان میگفت یه همیشه تو گوشم منده گفت ادهی سوار کشتی بودم تو یک دریایی دشتن سفر میکردن دریا متلاتم شد همه داد و فریاد و آه و نالب و خدا پیغمبر یه پیر مردی زنگوشه کشتی آرام یه گوشه نشسته یک تکون نمیخوره اومدن گفتن پدرجون تو هم دعا کن گفت چشم. دست با آسفان بلان کرد گفت گفتی نکن نکردم میگم نکن نکن دریا آرام شد کشتی راحت به ساحب اینا اومدن جلود خدا این ذکر کی گفته بود این دعا چی بود گفت نه چیزی نبود من به خاطر شما وگر نه خودم تسلیم بودم پسندم اون چرا جانم پسندن اما دیدم شما خیلی متلاتمی گفتم خدا یا چی گفتی نکن نکردم میدونی راست میدونی گفتی نکن من نکردم یه بار هم من میگم تو نکن خودم نکن این دعاست یعنی از اعماغ جان توجه که تویی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 واقعا استدلال پذیر بود که من کیف کردم که آدم اینا رو که میبینه واقعا حاضر پاشونه ببوسه که آدم تابع منطقم، خب من نماز رو نمی‌تونم بپذیرم، اینو قبول دارم، قرآنم قبول دارم. حالا چیش اشغام خب مردنم رکوع برم، سجده برم؟ خب من با خدای خودم مثلا راز نیاز میکنم حالا چرا وجو بگیرم دلا و راست بشم؟ گفتم خب ما تا یه مرحله با هم مشترکیم، از مشترکات شروع کنیم، قبلش نرا. شما خدا رو قبول داریم. با عاشقش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 گفتم من نمیگم اینا عبادت نمیشه ولی اون عبادتی که خدا از تو خواسته خدا بهتر میفهمه یا شما گفت نه خدا بهتر میدونه گفتم خب اگه خدا بهتر میفهمه چرا خدا گفته نماز بخون ور که عمر رکوت کهی رکوتو انجام بده سجدت اینجوری انجام بده شما میگی من به سلیقه‌م اینجوری میپسندم بندم ممکنه به سلیغم یه جور دیگه بپسندم ما هر کدوم سال‌های مختلف میتونیم داشته باشین ولی قبول داریم خدا بالاتره خدا گفتی این کارو بکن کمی فکر, فکر زد ز سیره گریه یه آدم حدود مثلا 30 سال زد حد گریه اینم اشواش اومد با صدا گفت من اصلا به همین مطلب ساده نداشتم خدا از من می‌خیره نه من خدا اگه او گفت اینجوری نماز بخون از من بهتر میفهمه چاش حال ببینید حالا مجمل شرح کردم یه کمی بسط کشید تا اینجا رسید می‌خوام اینو کنم اگر من در دعا یعنی خدا من هیچ اون تحلیل دقیق بکنی بالاتر نسبت به پایینتر میخونه دعا نیست همعرض از همعرض صداش میکنه دعا نیست پایینتر بالاتر رو میخونه پایینتر و بالاتری که از این طرف هیچ هست صفرم نمیتونم بگم از اون طرف هرچی بگم از اون بالاتره حالا این میخواد او رو بخونه وقتی او رو بخونه یه همچون نظری پیدا کرد و میگه بنده من اینجوری باشه میگه چهرش لذا یک راز بسیار غشنگیش که انسان کامل رو میگن عبدالله در زیارت جامعه شما یکی از الغابی که ایمه صدا میزنید اونها رو میگید که عباد الله نمیگید عبدالرحمن نمیگید عبدالرحیم درست عبدالرحمن هم هستن عبدالرحیم هم هستن چون الله اسم ذاتی است که جامع جمعی صفات بقیه هر کدوم اسم صفتی است که به مناسبت صفتی عبد الله می شود یعنی عبد دو نکته رو دقت کنید اینجا یک عبدی که تمام تجلیات او را عبودیت می کند نسبت به همه تجلیاتش خاضعه آشغم بر لطف و قهرش من بجد ای عجب من عاشق و این هر دو ضد به هر جهت او من ابوالله اگه عبدالرحمن باشه فقط به جهت رحمانیتش عبودیت میکنه اما عبد الله هست این یک دوم عبد یعنی آبدی که به قرب حق میخواد درسه قرب صفاتی یکی قرب این صفت داره که قربان صفت داره عبد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 این با دعا میشه ان الذين یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم الاخرین قال الباقر عليه السلام هوت دعا و افضل العباده الدعاء قلت ان ابراهیم لعوا حلیم قال الاو هوت دعا خب این مقدار حدیثو میخونم بحث میذارم جلسه بعد دعا چیست تذلل کوچکی در مقابل کمال مطلق که زمینه اتصال به کمال مطلق رو برای قرب پراهم کنه دو دعا وسیله قرب است حدیث شو می کنم توضیحش بمونه انشاءالله جلسه بعد همین کتاب حدیث دوم قلت لعبی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام ارز کردم ایل عباده زل. وجوم عبادت بالاتره است فقال ما من شيء افضل عند الله عز وجل من ان يسال ويطلب مما عنده وما احد ابقى إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسال ما عنده حديثو فقط ترجمه میکنم با این حدیث دیگه فقط در حد درس کردم اشاره که دیگه حالا بحث بمونه برای جلسه بعد. حدیث چی میگه؟ به امام باقر گفتم آقا جون کدوم عبادت از همه بالاتره فرمود چی چیزی در پیش خدا بالاتر از این نیست که خدا مورد سوال قرار بگیره ازش بخوای، درخواست کنی. و یو طلب مورد طلب قرار بگیره ازش طلب کنی اون چی که پیششه. و ما احدن اب قضا الله هر دی در پیشگاه خدا مبغوض قرار گرفته نمیشه از اون کسی که استکبار میبرزه از عبادت یعنی سوال نمی کنه سوال بپرسید از خدا بخو از خدا بخو یعنی چی؟ حدیث ششم از این بابا بخونم اپ کردم دیگه بحث میمونه جلسه بعد حدیث ششم دقت کنید سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول صفت حدیثه است که امام زیادی رو میفرمودند شنیدم که امام صادق میفرمودند علیكم به دعا دعا کنید دعا کنید شما رو به دعا فانکم لا تقربو به مثل هیچ چیزی به اندازه دعا شما رو به قرب حق نمی رسونه فإنكم لا تقربو به مثله به در فان به درستی که شما کم به وسیله چیزی مثل دعا به قربه نمیرسید. ولا تطرکو صدقی تن حتی یه چیزای کوچولو رو هم رهاش نکنید. اون هم با خدایتون در میان بذارید از او بخواید. ان تدعو ها این صاحب صغار و هو و شاه همونی که بزرگاه رو به شما میده کچیکار همون هم میخواد به شما فکر نکنید این کچیکار که از بقیه برمیاد. اینو این رو میدیم سراغ بقیه اینم دعا نیست قربه ایم اینشالا بحث میکنم این های کوچیک از بقیه هیچ که منهای خدا هیچی ازش بر نمیاد خاطر جمع هیچ که منهای خدا هیچی ازش بر نمیاد مگر همون خدایی که کبیر رو برای شما یا خودش روا میکنه یا به کسی دلش میدازه بیاد براتون انجام بده سقیرم همون خدا یا خودش انجام میده یا کسی رو میفرسته که براتون انجام بده لذا این معنا در دعا با یک اشاره دیگه وقتم داره تموم میشه بگذارم انشالله برای جلسه بعد حالا خیلی کار داریم رو بحث دعا باید بریم جلو فعلا این مقدار بحث کردم دعا چیست؟ یک دعا تزلله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 تفاوت از زمین تا آسمان. مرحوم احمد امین عراقی استاد فیزیک دانشگاه بغداد بود. مجتهد هم بود. خود شلواری بود. مجتهد بود، استاد فیزیکم بود، جزء فیزیکدان‌های قوی هم بود. بسیار آدم اخلاقی و متدین وارسته بنده بندی که ندیده بودم ولی استاد من با ایشون رفیق بود. برای ما گای خصیات ایشون رو میکرد خیلی از بزرگی روح این مرد میگفت ایشون 6 جلد کتاب عربی دارد، تکامل و فلسلام. فارسی ترجمه شده به نام تکامل در اسلام به همین نام هم ترجمه شده کتاب خیلی است توی یه که ما میخواییم بزنیم تو جلد سوم چارو میشه یادم میاد مواردی از این نمونه نقوم میکنه یکیش اینه میگه من یه استاد فیزیک صاحب نام علم جدید استاد فیزیک. دکتر فیزیک علم قدیم مجتهده به آدم معمولی که نیست بکنم همین جوری مثلا بعضی چیزای سرسریه شیعه هست از برس کردم بله از بزرگان مجدهید شیعه است. از بزرگان و سلا ارزنده آدم خدا رحمتش کنه آدم بزرگی بود ایشون نقل میکنه کتاب چاپ شده میگه من در بقداد یه آقایی رو میشناختم هر سال حج میره ولی دیرتر از همه زودتر از همه برمیگشت فهمیدم عادی نیست یه قضایه داره خود مرحوم احمد امین هم توی حرفا بود گفت اتفاقا تا من بیام کنکاشی کنم چیزی دستم بیادی فوت کرد سال اول فوتیشون پسرش همی کارو کرد منتظر بودم از مکه اومد رفتم دیدنش گفتم من فلانیم گفت می دم تا رو خدا میخوام ببینم چی بود پدرت هر سال اینجوری شد. و شما منسال این, این کارو کردی گفت واقعا من میخوام به شما بگم. دلم من از کار پدرم سر در نیاوردم. می‌دیدم کارهای غیرعادی داشت. اما امسال مثلا فرض کنید 4 روز منده به ایام خاص عمل حج، پدرم می رفت نصف شب دیدم در خونه مادر زدم اومدم دم در. مدر. دیدم یه بنده خدایی با یه مرکبیه. گفت من بودم که هر سال بابات می بردم مکه و برمیگردوندم با علوم غیرعادی، با روال غیرعادی. دوست داری؟ گفتم باش گبیا. گفت من اون سواره بر ترکش کرد و یه وقت دیدم که تو آسمان ها دارم سیر میکنم نفهمیدم توی بیابون لمگذره ای اومد پای من آورد پایین گفت من از اممال ابلیسم از دست نشنده های من وسواسل خ... من... خناس الید فی صدور ناس منعل جنت و ناس من از اممال منحرف کننده اجنه در مزدوران شیطانی هم.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 نفس ما منفعیل نیست معرفت رو هم خدا نباید بر مبنای فائلیتش در نفس من الغا کنه که من منفعل بشم که حرفارم خواهیم زد انشالله به این حرف رب پیدا میکنه ولی باید بحث بشه میذارم اگه زنده بودیم اونجا این بحث رو مرحوم احمد اشاره اشاره میکنه میگه ایشون گفت که من از اونا هستم و پدرتو هر سال میبردم حالا اومدم شما رو ببرم ولی اینجا اگه من سجده کردی میبرمت حج رو برمیگردونم نکردی راحت میکونم همینجا بمیری بابا دو با من سجده میکرد من میبردم میآوردم گفت من گفتم که امتحان من شروع شد فهمو ببینید آقا امتحانات داریم ما تو این امتحانات اگه نلغزیدین بعدش که چیزی هم به ما دادن زرفیت شد داریم ولی اگه تو امتحان بلغزیم اولن چیزی به ما نمیدن یه برو آقا خودت نشوندادی گفت امتحانم شروع شده این یا راست میگه یا دروغ اگه راست بگه بابام اشتباه کرد چرا من اشتباه کنم اگه دروغ هم بگه چرا من حرفش رو بوش کنم گفتم نه آقا جون تو رو نمیکنم برو رفت من تو بیابان لم رفت دیگه یقین کردم بعد بمیرم به سجده افتادم گفتم خدایا سجده این مزدور ابلیس رو میکردم منو من سجده تو رو بکنم نمی منو؟ به سجده بودم دیدم یکی زد رو شونم پاش رو پا شدم گفت چرا میبریمت من معمولم تو رو ببرم و برگردونم شبه بید تو احیا گفتم حالا جاشه اشاره کنم که عرض ادبی باز به امام صادق بکنیم بحثم بمونه آی غفاری دیگه ما رو ببرم توی اون وادی انشاءالله گفت فرعون نشسته بود خیلی از یه حرف کیف میکنم فرعون نشسته بود رو تراس کاخش داشت نگاه میکرد دید صندوق رو آب داره میاد گفت کی خودشو میندازه تو آب این صندوق بگیره بیاره بهش سله میدم سی نفر از اون مال که خوش تو آب زدن بالا پایین یکی تونه صندوق بگیره خب بقیه گفتن ما دیگه نتونستیم صندوق رو آورد بده به فرعون قضیه از تو موسا بود اومدن سله به این یکی بدن فرعون نه به هر 300 تا بدید گفتن چرا؟ اون دوی سو نوده دیگم به امید و آب زدن امیدشونو ناامید نکن خدایا؟ یا سرعون بنده سرکیش تو امید و ناامید نمی کن. ما به امیدی در خونه تو می آیم. با کمال تزلل اعتراف میکنیم، کنیم او و که به بابک حقیر که به بابک مشکین و که به بابک زلیل و که به بابک ولا یم کنول فرار من حکومت خدا کجا میتونم برم از در خانه تو به کدوم در خونه برم گر بر کنم دل از تو و برگارم از تو مه این دل کجا برم و این مهر بر که کنم میگن اینو البته سمبولی که داستانی میدونید واقعیت نداره ولی خوب ترسیم کردن وقتی که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 به که رح نماینده توی من دست به هیچ دستگیری ندارم. هم که اینان همه فانیند و پاینده توی جنت رای مکتب توباد امام صادق علیه السلام ایام شهادتیشونو باز از ادبی کنیم مشابهتی که ائمه به مناسبت‌های مختلف در رابطه‌ی با حضرت زهرا سلام الله ها تو زندگیشون پیش میومد، عجیب دامن می‌زدن چه قضیه حضرت زهرا رو زنده نگه دارن یکی از اصحاب ما صادق چند روزی خدمت آقا نیومد یه روز اومد آقا فرمودن چند روزی شما رو ندیدیم کجا بودید از کرد آقا خدا اولادی به ما داده دختری داده من دیگه مشغوله این امور بودم نرسیدم فرمود اسمشو چی گذاشتید عرض کرد آقا جون اسمشو گذاشتم یا فاطمه حضرت در روایت داره فرمودن فاطمه هر فاطمه که میگفتن با حالت سجده خم میشدن فاطمه فاطمه تا سرشون به حالت سجده به خاک کسپوندن بعد با شدن فرمودن سیلی بهش نزن یا خانه امام ساده و آتش زدن زن و بچه سراسیمه اینور اونور میرفته بعد از این که آتش خاموش شد، آرام شدن حضرت زن و بچه رو، دیدن امام صادق خیلی بود. عرض کردن یاد نرسول الله کسی عذیت نشده در این آتش سوزئی؟ میخواستن شاگرداتون بترسونن به متفرق بشن؟ فرگود من برای اینا گریه نمیکنم. من برای عصر کربلا گریه.